این داستان فرزند گم شده روزی روزگاری زیر گنبد آبی آسمون ملکهی بود که خداوند به او فرزندی نداده بود. اون شب و روز به درگاه خدا دعا می کرد و ازش می خواست به او یک پسر یا یه دختر بده. یکی از روزها که در باغ مشغول قدم زدن بود فرشته مقابلش ظاهر شد و گفت شاد و خورن باش. تو به زودی صاحب یک پسر میشی که قدرت ای داره و هرچه آرزو بکنه بیدرنگ به دست میاره. ملکه نزد پادشاه رفت و این خبر مصر رو بهش داد. بعد از مدتی هم پسرشون به دنیا اومد و پدر و مادر غرق در شادی شدند. هر روز صبح ملکه پسرشو به باقی پر از حیوانات میبرد و فرزندشو در آب پاک چشمهی که در اون جاری بود شستشو میداد. یه روز که فرزندش چند ماه شده بود، ملکه بعد از شستشو روی نیمکتی در باغ نشست و بچه در بغلش به خواب رفت. چون هوا خیلی گرم بود، خودشم به خواب رفت. در قصر پادشاه، آشپز حریسی بود که میدونست پسر پادشاه از قدرت خاصی برخورداره. آشپز وارد باغ شد و به طرف همون نیمکتی رفت که همسر پادشاه روش خوابیده بود. و بچه رو از بغل اون دزدید. بعد سر مرغی رو برید و خونش رو روی لباس و پیشبند ملکه ریخت. بعد بچه رو جای مخفی کرد و پرستاری گذاشت که بهش رسیدگی کنه و فوری برگشت و نزد پادشاه رفت و گزارش داد که ملکه خوابش برده و اجازه داده فرزندش تومه حیوانات وحشی بشه. پادشاه وقتی چشمش به خونهای روی لباس ملکه افتاد حرف آشپز و باور کرد و در عین خشم و عصبانیت دستور داد برج بلندی بسازند که نور ماه و آفتاب در آن نفوذ نکنه و دستور داد ملکه بیچاره رو بدون آب و غذا در اون برج زندانی کنند پادشاه خیال میکرد همسرش بهزودی در اثر گرسنگی میمیره ولی اون هفت سال آزگار در اون برج زندانی موند چون دو تا پری به شکل دو تا کبوتر سفید رنگ در تمام این سالها آب و گوشتشو فراهم میکردن. بعد از مدتی آشپز که خبری از کبوترهای برج نداشت به خدمت خودش در قصر خاتمه داد. چون فکر میکرد اگر بچه هر آرزویی بکنه برآورده میشه. راه افتاد و به مخفیگاه بچه رسید. دید که پسر بزرگ شده و میتونه حرف بزنه. کمی که گذشت به بچه گفت چرا آرزو نمیکنه که یک قصر زیبا، باغ و اساسیه لازم برای ما فراهم بشه پسرک آرزوهای آشپس رو بر زبانش جاری کرد و هنوز حرفش تموم نشده بود که همه اون چیزها فراهم شد بعد از مدتی آشپز بهش گفت چرا آرزو نمیکنه که یک دختر کوچیک زیبا بیاد و همراه و هم بازی تو بشه طولی نکشید که دختر کوچیک و زیبایی ظاهر شد. این دختر چنان زیبا بود که حتی نقاشان هم نمیتونستند چنین زیبایی را تصور کنند تا در تابلوهای خودشون به تصویر بکشند. بچه ها با هم بازی میکردن و خوش و خرم بودند. آشپز هم مثل یک نجیب زاده به شکار میرفت. سرانجام روزی آشپز ترس برش داشت. که مبادا زمانی پسرک آرزو کنه پدرش بیاد اون وقت حسابی توی مخمسه میافته اون که در قصد رو در ناز و نعمت زندگی میکرد دیگه نیازی به این پسرک نداشت با این فکر و خیال روزی دخترک رو پیش خودش خواند و گفت امشب وقتی پسر در خوابه این کارد رو بردار و در قلب اون فرو کن چون به دلم براد شده که اگر اون زنده بمونه ما رو به دردسر میندازه دختر اگه بیچاره اصرار کرد که از اون نخواد چنین کار وحشتناکی بکنه ولی آشپز گفت اگه اطاعت نکنی زندگی خودت به خطر میافته. اون وقت دختر رفت و صبح روز بعد معلوم شد که نتونسته دست به این کار وحشتناکی بزنه. اون به آشپز گفت این کار از من ساخته نیست. نمیدونم چرا باید جونه یه بیگناه رو بگیرم در حالی که هرگز به من آسیبی نزده. آشپز گفت اگه امشبونو نکشی جون خودتو میگیرم. دخترک از روی ناچاری در تاریکی شب بیرون رفت و آهوی کوچیکی و کشت و قلب و زبون حیوانو در آورد و به اون مرد خبیس نشون داد تا اون تصور کنه که پسرک کشته شده. از اون طرف پسرک که هنوز زنده بود زیر رخت خوابش پنهون شده بود و دیده نمیشد. وقتی آشپز شرور وارد اتاق شد و اون همه ماجرا رو شنید با خودش فکر کرد ای روسیاه پیر مزه این همه خوبی هایی که در حق تو کردم و این همه وسایل که برات فراهم کردم این بود که از جون منو بکنی حالا من میدونم چه بلایی سرت بیارم بیدرنگ آرزو کرد که آشپز به یک سگ تبدیل بشه و با زنجیر طلایی به جایی بسته بشه و جز خاکستر چیزی برای خوردن نداشته باشه اون آرزوشو زیر لب زمزمه کرد و در یک چشم به هم زدن آرزوش عملی شد آشپز نابکار به سگی بزرگ سیاه خشمگین تبدیل شد اما چون با زنجیر بسته شده بود نمیتونست به کسی صدمه بزنه بعد از این جریان پسر و دختر مدتی در قصر تنها موندند تا اینکه کم کم پسرک به فکر مادرش افتاد نمیدونست آیا او هنوز زنده است یا نه رو کرد به دختر و گفت من مایلم به سرزمین پدرین برگردم حاضری همراهم بیای اگر بیای هر چی دلت بخواد برات فراهم میکنم دختر گفت این راه خیلی طولانیه و اگرم نیام در این جای دور افتاده چه بلایی ممکنه به سرم بیاد؟ پسر وقتی دید که اون نمیتونه جدا و تنها زندگی کنه آرزو کرد که دخترک به گل میخک زیبایی تبدیل بشه. سگ سیاه هم باید به دنبال اون میرفت تا به سرزمین خودش برسه. اول نزدیک برجی رفتند که مادرش در اون زندانی بود. چون برج بسیار بلند بود، پسر آرزو کرد که نردبان بلندی فراهم بشه. بعد وقتی از نردبان بالا رفت و داخل برج و نگاه کرد فریاد زد مادر عزیزم همسر پادشاه آیا زنده ای یا مرده ای؟ مادر خیال کرد که یکی از پریان باهاش صحبت میکنه. جواب داد من به اندازه کافی غذا دارم. پسر دوباره گفت من فرزند تو هم که گفته بودن حیوانات وحشی از دامن تو دزدیدن و بردن ولی من هنوز زندم و به زودی تو را از اینجا نجات میدم پسرک از نردبان پایین اومد و نزد پادشاه رفت و اطلاع داد که یک شکارچی از سرزمین بیگانه است و میخواد در خدمت پادشاه باشه پادشاه به شرط موافقت کرد که او بتونه جای شکار گبزن رو پیدا کنه پادشاه گفته بود که سالها همه جای کشور و جستجو کرده و نتونسته اونو پیدا کنه. شکارچی جوون قول داد که در زمان کوتاهی روی میز پادشاه و از گوشت شکار پر کنه. بعد از اون بیرون رفت و همه شکارچیان رو جمع کرد تا دست جمعی به شکار برند. وقتی همه در انتهای جنگلی جمع شدند از اونها خواست دایره بزرگی تشکیل بدن که یک سر اون باز باشه. شکارچی جوان خود در مرکز دایره قرار گرفت و آرزو کرد شکارها وارد دایره بشن. در اندک مدتی دویس رس گوزن وارد اون دایره شدند و شکارچی ها اونها رو شکار کردند. شکارها رو در کالسگی ریختند و به قصر پادشاه بردند. دیگه پادشاه بعد از سالها میتونست مهمونی بزرگی بده و میز ناهارخوریش رو با گوشت شکار پر کنه. پادشاه از اینکه شکارچی جوان به قول خودش عمل کرده بسیار خوشحال شد و دستور داد روز بعد مراسم جشن و سروری با حضور همه ها راه بندازه. وقتی همه مهمونا جمع شدند پادشاه به شکارچی گفت تو در کارت مهارت و لیاقت فرابانی نشون دادی و باید در طول مهمونی کنار من بشینی شکارچی جواب داد علا حضرت ها من شکارچی ساده ای هستم و شایسته این همه عزت و احترام نیستم. پادشاه از جاش بلند شد و گفت من از شما میخوام که تا پایان مهمانی کنار من بشینی. جوان اطاعت کرد و رفت در جایگاه افتخار کنار پادشاه نشست. اون که فکر مادرش همچنان ذهنش پر کرده بود آرزو کرد در همون لحظه یکی از درباریان از جاش بلند شد و از پادشاه درباره ملکه که در برج زندانیه و اینکه آیا او همچنان در قید حیات یا نب بپرسه. در همین لحظه رئیس تشریفات پادشاه بلند شد و گفت علا حضرت ها، اکنون که ما در اینجا سرگرم شادی و شادمانی هستیم آیا اجازه می‌فرمایید بپرسم ملکه که در برج زندانی هستند زنده هستند یا در اثر گرسنگی از بین رفتند پادشاه با لحنی پرغرور جواب داد او اجازه داد که حیوانات وحشی فرزندم را بدرند از این روی دلم نمیخواد چیزی از او بشنوم در این دم شکارچی جوان برخاست و گفت اعلی حضرتا. پدر تاج دارم ملکه هنوز زنده است و من هم فرزند شما هستم. حیوانات درنده در با من کاری نداشتند. یک آدم رزل که آشپز شما بود مرا که در آغوش مادرم خواب بودم دزدید و خونه یک مرغ رو روی لباس ملکه پاشید تا بتونه شما رو فریب بده. شکارچی همونطور که صحبت می زنجیر سگ سیاه و کشید و اونو جلو آورد و گفت: این آدم نابکاری که برای مجازات به یک سگ ترسناک تبدیل شده، اجازه میدین اونو به شکل اولیه در بیارم؟ بادشاه که با شنیدن این حرفها از حیرت انگشت به دهن مونده بود، موافقت کرد و طولی نکشید که آشپز قدیمی با پیشبند سفید و کارد آشپزانه در کنار اونها ظاهر شد. پادشاه فوری اونو شناخت و سراپای وجودش از خشم پر شد و دستور داد اونو در ترین سیاه چال قصر بندازن. بعد شکارچی همه اونچه را که پس از دوزیده شدن او اتفاق افتاده بود برای پادشاه توضیح داد و گفت حالا پدر عزیزم اجازه می دهید دختر زیبایی را به شما نشان بدهم که با به خطر انداختن زندگی خودش منو نجات داد. پدر گفت با کمال اشتیاق می‌خواهم که او را ببینم پادشاه و پدر گرامی اجازه میخوام اولونو به صورت گل به شما نشون بدم ضمن صحبت جیبشو گشت و گل زیبای میخک رو بیرون آورد و روی میز گذاشت همه اظهار کردند که گلی زیبا و کمیابیه، همین که جوان آرزو کرد او تبدیل بشه دختر زیبایی مثل پنجه آفتاب که زیباییش رو حتی نقاشا نمیتونستن به تصویر بکشن در مقابل درباریان ظاهر شد. پادشاه دستور داد تا چهار نفر از حاضرای توی جلسه به دنبال ملکه به برج برن و ملکه رو به اونجا بیارن. اونها ملکه رو آوردند و کنار میز سلطنتی نشوندند ولی اون دیگه قادر نبود غذاهای عادی بخوره و سه روز بعد در اثر گرسنگی مرد بعد از اینکه ملکه رو دفن کردند اون دوتا پری که به شکل کبوتر سفید بودند و روزانه غذای اونو در برج تامین می‌کردند روی گور ملکه لونه کردند آشپز پیر هم اونقدر در سیاه چال ماند تا از بین رفت در این فاصله پسر پادشاه با اون دختر زیبا ازدواج کرد و بعد از مرگ پدرش پادشاه همون سرزمی شد سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 تگ مهران دوستی